Uh, تو بخش بعدی های دکتر جانه بودن بیست دقیقه بیست و پنج اگه شاهنامه خوانی هم باشه اینجوری نمیخوش. حتی حداقل چایی میدید نه نه نه نه من اینو ببخشید اینو که دارم عرض میکنم به این خاطره من خودمو دارم میگم من همینجور به شما اصلاً سوال میکنم یه استراحت مثلا به شما نمیدم یه چایی هم که برای شما نمیاریم بالا یا تنقلاتی هم چیزی باشه شیین. ما همینجوری داریم. نه ببینید شاهنامه رو در حدی که تو قهوه خونه ها نه, نه نه نه نه نه من منظورم اینورا نه من از اکنون میتونم به شما قول بدم دو ساعت پشت هم سخن بگویم به یاری یزان و به یاری یاری یرمانیاکن اگر من گفتم که موسیقی برای برای بله شنوندگان متوجه شیدا من خودم رو دارم میگم یعنی اینکه هیچ فضای بسالا راحتی برای شما مهم, مهم میپوره به خدا اینقدر پیامک و زیاد هست اساس جنیدی که بخونی. من همینجور بودم یعنی هر دو مکیلی که من میزنم یک دفعه سی پیامک میاد که باید بخونم وقتایی از اونها رو بخونم بخونی. که مرتبط با ببخشید. زبان های باستانی چگونه ترجمه می شود؟ آب به زبان اوستایی چه می شود؟ آب به زبان اوستایی آب بوده، در فارسی شد آب، در فارسی شد آب در زبان م... مردم بخشی بخشای از ایران شد او، همین که در زبان فرانسه هم او میگن. یعنی اینو از صورت کهن تبدیل میشه کم کم کم کم میاد به صورت نو. اما با نهایت درد تا مدتی پیش زبانهای باستانی ما رو ترجمه میکردن و استادان ما هم تو دانشگاه ها, ها رو درس میدادن و هنوزم درس میدن اما خب از وقتی که ما رفش بنیاد نیشابور رو برفراشتیم این کار به دست خود فرزندان ایران انجام میگیره و جالبه برای شما بگم که یکی از فرزندان بنیاد نیشابور در کلاس دانشگاه با استادش مبارزه کرد استاد گفته بود که نام میدونم که نمیخوام بگم گفته بود که زبان پهلوی مرده است و این شاگرد گفته بود که برای چی میگین مرده است گفت بیگی برای اینکه نمیشه بدون سخن گفت امروز اگر یه کسی بگی یه مرده از توی گور بلند شد و زنده شد من باور میکنم اما اگر بگن زبان پهلوی زنده است من باور نمیکنم این شاگرد من گفت که ویژگی زبان زنده همینی که به سخن گفت و گفت بله گفت خب من میتونم نیم ساعت با شما پهلوی صبت کنم من در بنیاد نیشور پهلوی آموختم اما اما با بالاتر سخن شعر من به زبان پهلوی شعر سرودم و خیلی از شاگردهای من به زبان پلوی شعر سرودم به ویژه دو, دو شاگرد داشتم که هر دو استاد هستن امروز چون شاگرد خودم هستم من نامشون رو میبرم یکی به نام شادمانی. امروز استاد هست یکی به نام بهشتی سالم بهشتی امروز استاد هست با همدیگه در سر کلاس با هم بودن و رقابت میکردن در سرودن شعر و بعد به زبان, پهلوی. به زبان پهلوی این شاگرد من گفت که من بلند شدم گفتم یه شعر که سروده بود در ستایش من البته همه جا فریتون, فریتون چون به زبان پهلوی فریتون, فریتون گفته میشه گفت افتاد ما گوش کرد دستی کرد جیجیبی جعللهغش و هیچی نگفت. بعد از پایان چون بعضی از این بخش رو نفهمیده بود گفته بود که خب حالا لطفا اینو ترجمه کنید تا خانم آقایون شاگاه بفهمن. گفت من ترجمه هم کردم. به زودی ملت ایران از این ننگ خودشو خلاص میکنه که چشم دستی بیگانگان داشته باشه و ما محدممات کار رو فراهم کردیم مثلا بزرگ داریم فرهنگ به زبالش رو رو ما فراهم کردیم آموزش زمان پهلوی رو نامی پهلوانی ما این کار کردیم بزرگترین فرهنگ باجه های رو ما فراهم کردیم البته روانشاد احسان بهرامی آغاز کرد و بعداً من به او یاری کردم و در صدق هستیم یک فرهنگ بزرگ پهلاوی هم در دست داریم که شاید دو سه سال دیگه به دست برسی بزرگترین فرهنگ پهلوی جهان خواهد بود ما ایرانیان باید خودمون این شرف و افتخار داشتیم داشته باشیم که زبان رو به زمان امروزی ترجمه کنیم با سلام به استاد و مجری محترم من چندین بار است پیامک میزنم مثل اینکه قصد ندارید جوابم را بدهید از استاد میخواهم کتابی در مورد جشنها و مراسم خاص باستانی به من معرفی کنند رضا کایدانی از شوشتر درود به شوشتر و مردم مهربانشون اون مجموعه عظیم بهروری از نیروهای آب من خودم یک که کتاب نوشتم به نام زروان سنجش زمان در ایران باستان که در اون به جرشنا ایرانی هم همه اشاره کردم اونو میتونید از بنیاد نیشابور تحلیق کنید بل. بعد درود بر استاد جنیدی و آقای هدایتی نام درست نیشابور چیست بابک؟ نام نیشابور در آغاز بوده رائه ونته یعنی دارنده فروغ و روشنایی و اون شهر در این در نزدیکی شهر امروز بوده و این شهر چندین بار عوض شده بعد این رائه ونته در زبان پهلوی شد ریوند و در زبان شاهنامه شد ریونیز خب به خاطر آتش کده برزین مهر بوده این نام داده شده و اون است که به تازگی بعلوم شد که اورانیوم داره و درخشش هم از خودش داره و من در اون کوهستان زاده شدم چنین پیداست که در یکی از این ویرانی شهر احتمالا زمین لرزه بوده چون چندین بار این شهر با زمین لرزه ویران شد اما وقت در زمان ساسانیان شهر رو دوباره ساختن و نام گذاشتن نیو شاپور نیو یعنی پهلوان شاپور رو ام شاپور اما خب خراسانیان که خودشون پارتی بودن اینا مایل نبودند که بزرگترین شهرشون به نام شاپور ساسانی نامیده بشه که اونا آمادن گذتا کردن و ساسانیان رو از بین بردن شیوه خوب پادشاهی تیره ها رو در ایران در بنابراین اندیشیدن که ام شاپور نگویند و یک لقب دیگه به این شهر بدن که هم شاپور گفته نشه و هم که ساسانیان رو رضایتشون رو جلب بکنن به این شهر گفتن ابرشتر یعنی شهر برین که در فارسی شد شهر. این خاصیت بود و من در متون پهلوی موجود فقط یک بار نام شاپور رو شاپور رو دیدم همه جا ابرشتر اومده تا اینکه بعد از اسلام دیگه اون حساسیت ها اینا از بین رفت دیگه نشابور هم گفتن به تلفظ خود مردم شهر نشابور ولی اون نامی که ساسانیان برش گفتشن نو شاپو هم داره نیو شاپو با سلام علت نامیدن تبریز به این نام چیست؟ درود بر شما باید شما بدونید که وقتی ما میگیم تبریز این ریز پسوندی که الان درباره ناغان گفتم پسوند ریز راز در شیراز به صورت راز در شیراز است به صورت ریز در نیریز است به صورت لیز در تفلیس است بن پسورد تفرش تفریش است اینو پسنده خب اه... رابون شاد استاد روانشاد شاد گیاه تبریزی که خیلی به من مهر داشت و منم واقعا مهربانانه دوستش داشتم برپاره آذربایجان خیلی کار کرد و چند سال پیش رفت از جهان او معتقد بود که این ریز، این ریز رود باشه و تب یعنی گرم رود روان شاد گمان من نه این ریز همونه که در شیراز و نیریز و اونا هست یعنی پسند مکانه حالا مثلا شیراز خود باجه شی در زبان عوستایی یعنی نشستن، ریشی نشستنه که هنوزم در بشین ما شی رو داریم در تاجیکستان میگن شین یا هست اونجا؟ بله بله بخواهد میگن شینیتان شینیتان شین یعنی بشینید یعنی بفرمون بشینید بله و شی ریشه نشستن در زبان عوستاییه بنابراین شیراز میشه جایگاه نشستن در تبریز نمیتونیم ما بگیم که اینجا تب اولیش به معنی گرم باشه منطور ریز دومیش که جایگاه هست مسلمه اون طبه مثل همون ناقان مثل سمرقند اینا تغییری شکل پیدا کرده که در تف... تفریشم هست در تفلیسم هست میبینین اینا این حالا چی میتونه باشه باید کوشش کرد بل. با سلام در جایگاه موسیقی در ایمان باستان توضیح بفرمایید. موسیقی نامیس یونانی که بر اساس یک افسانه دروغین یونانی که چند موز یعنی چند الهه یا نیم خدا هستن در طبقات زمین و آسبون در دارن چنگ میزنه و مدار عالم بر های ایناست یعنی زیر خاکا یک نفر نشسته داره چنگ میزنه اونا نامشون موز بود بنابراین از روش موزیک ساخته شد و موس... بعد به فارسی اومد ما... به عربی و فارسی ما... موسیقی موسیقار ام... اه... گفتن که این بر پایه پندار و نادورس یونونیانه در ایران بوده هو نواک در زبان پهلوی هو نواک یعنی نوای نیک نوا کمونه که کافش افتاد شد نوا هونوا هونوا و تبدیل به یه شد شد هونیا و شد خونیا نوای خوش چنین گفت که مازندران یکی خوشنواز هم زرامش خوش خوشنواز یا خوبنواز یعنی کسی که پس بنابراین خود واژه موسیقی به زبان فارسی میشه نوای خوش یا هونیا یا هونیا زبان پهلوی من در این زمینه یک ای کتاب نوشتم به نام زمینه شناخت موسیقی ایرانی که چاپ سومش به پایان رسیده در چاپ چهارم نامش میخوام می‌خوام کنم بنویسم که نوای خوش ایرانی اما فعلا اون کتاب در دسترس از بنیاد نیشابور میتونید تهیه کنید بخونید و اون چیزی که من حالا گفتم در پایانی بخش در مورد اینکه استاد خسته نمی‌شن استاد هیچ‌وقت خسته نمی‌شن در پایان برنامه میان خب حالا چیکار کنیم منها اومادم که کشتیام بجیرم الان ماشاءالله سرزنده و شدم منظورم اصلا خانه نبود منظورم این بود که این فضای پژوهشی که ما داریم همه دور هم هستیم شاهنامه ها رو باز کردیم و شما مثل اون بزرگترها مثل اون قدیم ها که بزرگتر میشست بالای مجلس ما شاگردان میشستیم دور و هر کدوم شاهنامه ای باز کرده بودیم گوش می‌کردیم و این پیامک هایی که ما می‌خونیم مثل همون سوالاتی هستش که شاگرده بچه های خونه می پرسیدن بچه های فامیل می پرسیدن مثل یک خانواده من منظورم این بود این خویید... پس،, پس شیرینی و شادی در انجمن شاهانم و خانی خود شاهانم هست بله <laughs> یه پیامک اومده که خیلی دوست دارم اون رو بخونم کوشش این پیامکش آخ, آخ, آخ آه. سلام یادتون <سلام> <سلام> <سلام> هست گفتید انشالله کنکور قبول میشم قبول شدم صدده سی و شش بیست و پنج ش هم ننوشته بیوری از بله من به خاطر دارم, من بخاطر دارم. دل با, پس دل با پس کنکور بود بیاری یاوری از قبول خواهی شد شد مشکلی نیست که آسان نشود مرد باید که هر آسان نشود. بگر روز فرمود تا گیب و توس ببستند شبگیر بر پیل کوس در گنج بخشاد و روزی بداد سپه برنشاند و بنه برنهاد در باره برنشاندن سپه بونه برنهادن چند بار سپاه همی رفت منزل به منزل سپاه شده روی خورشید تابان سیاه خروشی بلند آمد از دیدگاه به سهراب گفتند کامد سپاه سپاهیان ایران به دژه سفید نزدیک میشن از دور دیده شد و دید... از دیدگاه خروش برامد که سپاه ایران اومد من گمان دارم که اینطور که فرمودان تلفن بسیار شده برقیه داستان رو بذاریم برای آینده باشه و من الان بازم من, بل... من پرمکار رو باید بخونم <تصفح> آیا شهر چاچ همون تاشکند است؟ بله چاچ شهر باستانی است که کمان های چاچی از اونجا بسیار اومده. بعد بعدن چه وقتی که عراب اومدن چه نمیتونستن بگن چه تبدیل به شه شد در هر دو بخش و چون ایرانیان نه این واژه رو نمیفستند بنابراین شهر تاشکند. شهر رو تاشکند نمیدند. اه... پیشنهاد میکنم یک شب برنامه رو اختصاص به باستان شناسی باشد. قواه ازگری از نظر آباد باشه چشم من مطرح میکنم و اینم جالبه در مورد باستان شناسی و زبان باشه شاد باشید من خودم هر جا لازم باشه مثلا امروز میبینید که در مورد گه وارد شدم به انبارهایی که در تپی زاغه بوده و از بابت با از دیدگاه باستان شناسی نگاه کردم اگه ما بخواییم که یک شب همش درباره باستان شناسی صحبت کنیم، ما شانمن خونه نمیشه ولی من هر دفعه لازم بود خودم وارد میشم. مثلا در مورد های باستانی در مورد باستان شناسی ما صحبت کردیم با آقای دکتر کارگر، یکی در حدود نه ما برنامه داشتیم هشت 8م ما برنامه با آقای دکتر کارگر. نه. من بیشتر منظورم در مورد های باستانی هستش، حالا هر از این... صورت هر وقت لازم بشه بنده وارد میشم. بعد پیامک بعدی، حالا نمیتونم بخونم مو... لطف کنید سخه خواهیم نیافر تلفن ها رو پخش کنید که آقای دکتر جنودی پاسخ بدن منم بینش بازم پریمه کارو میخونم با توجه به موضوع انتخاب میکنم خدمت هایی رو عرض میکنم شباید بوشید من خیلی علاقه من هستم به شاهنامه فردوسی من دارم از کجا شروع کنم و چگونه؟ یم بارم مارا مان به لینش بیای من این کار را کنم یا استانداره رو. به آقای رستمی خوب از همیچو شروع کنید و اگر میخواد که افسردها شنوند نخونید بعد صنمیکی که من ویراج کردم بخونید و بعد هر شب روزهای یک شمب شب با این برنامه با ما همگام باشید گامتان فرخونده با درود بر استاد جنیدی و جناب هدایتی آیا زبان اوستایی پیش از زبان پهلوی در ایران زمین روایی داشته یا زبان زبانی ویژه برای خواندن و نوشتن نوشتن نوشته های دینی بوده است گمون دارم که من این در افتار امشب شرط بل بله. که البته تاریخ این نوشته های اوستایی همه کهانت اما به دلایلی گمان میره که قبلا پهلوی بوده اما نوشته های پادشاهان و نوشته های دینی و کتاب ها به زبان اوستایی بود. به طور شما آقای دکتر جنید میخواستم بپرسن که آیا حقیقت دارد در زمان های ساسانیان فرزندان طبقات پایین جامعه اجازه درست خواندن نداشتند. مانند فرزنده کفاش که میخواست درست به خانده ولی اجازه نداشت. آره در شانه به این موضوع اشاره شده. سبتون بخیه آنیتا حسانوی هستم از گرگه. آنیتایی عزیز ترود بر تو. من دلم تنگ شده بود. چند وقت زنگ نمیزمیم. آنیتایی زنگ نمیزمیم. بر... ام... خواندن و نوشتن همگانی برای همگان آزاد بوده و ما یک کتابی داریم به نام حوتروی کواتان او روی تک که در اینجا نشون میده که چه درسهایی میدادن به،, به همگان و باز در پندهای آتورپاد مانسپندان داریم که نوشته زن و فرزند خود را از دبیری دور مکن نشون میده که همگان میخوندن منطور در حدی که بتونن متون دینی رو بخونن یا کارهای عادی رو بکنن دبیری در حدی که موجب میشد که حسابدار بشن یا مهندس بشن یا مشاغل بالاتر ویژه بعضی از طبقات دیگر بوده با درود به استاد جنیدی عزیز معنی شهر ترقبه در استان خراسان, خراسان رزوی چیست؟ با تشکر از برنامه خیلی عالی درود بر شما میدونید که ترقبر با تی دستدار نوشتن ظاهر نوشتن عربی بهش دادن این تروقبر بوده تروقبر در بازال بوز آخریش احتمالاً پت باشه که نگهبانی اینها رو نشون میده برای پیشوندش همونطور که در گفتار پیشین گفتم بعد کوششی بیشتری کرده درود بر شما معنی نام کاوه را از کارشناس محترم برنامه بپرسید با تشکر نام خیلی خیلی شگفتی داره مفهوم خیلی بلندی داره که من ب... کتاب داستان ایران رو چاپ کردم اونجا خواهیدید خیلی خیلی شگفته خیلی باور نکردنیه منطقه من هنوز نمی‌تونم این رو برای شما بیان کنم اه... اه... چشم را باشید برای داستان ایران تلفن می خانه دوست دار کنم در مورد استان کرمانشاه مردای توضیح بدم چه قدمت تاریخی داره. باز میرم از کرمانشاه مزامیش. نخستین نشان تاریخی این است که کرمانشاه نیست اینجا نه کرمانشاه. شما شما که خودتون کرمانشاهی هستید، از پدربزرگان همه چیزی که همین ین کرمانشاه و این شان پس‌می‌دهی که در کاشان و لشان و خیلی جاهای دیگه هست و شنیده میشه. کرما هم در اون مقاله بزرگی در که درباره کرمان نوشتم نشون میده که کوهستان میهن کوهستانیه و شما خودتون میدونید که هم در کرمان و هم در کرماشان کوه های بلند بسیار داریم و این نام از این بابت بهش داده شده در نوشتههای های عربی پس از اسلام کرماشان به صورت قرمی سین درمده. یعنی شان به صورت سین درمده و کر به صورت قر درمده. و باز ما, ما به صورت می قرمی میهن که و یکی از بخشهای بزرگ ایران بوده در زمان حقامنشان که نامش اومده. با درود اصیل ترین ایرانیان قبل از ورود آریایی ها چه کسانی بودند؟ آقای تورج بهمنی از سپاهان. آریاییان بودند. چون آریاییان وارد نشدن. این افسانه ناراس رو اروپاییان برای ما ساختن برای که ننگشون اومد که وقتی میبینن در 800 سال پیششون وحشی بودن و دوست بودن و ما 4850 سال پیش جراحی مغز روی دختر 16 ساله داشتیم این بنابراین این دوستان رو گفتن که آریاییان از یه جایی و جالب اینه که قوم مغول اومد به ایران ما میدونیم از کجا اومد عرب اومدن از کجا اومدن. اسکندر از مقدونیه اومد میدونیم از کجا اومد غزان همه همه حمله کردن جایگاه اصلیشون معلومه اما این به اصطلاح ایرانشناسان غربی که این داستان دروغ و یاور رو برای ما ساختن هیچ کدوم نتونستن بگن که پایگاه نخستین آریاییان کجا بود که اومدن به ایران نه ایران از, آن... از آغاز از آن نیاکان ما بوده و نیاکان ما در جا بودند از جایی به اینجا وارد نشدن. برود بر فردوسی نامدار و روان نیاکانمان ایران به چه معنی است محناس؟ ایران ایر یعنی فروتن در عفستود عده یعنی پایین در پهلاوی شد ادر و بعد در خود پهلاوی باز تغییر پیشت خود ایر یعنی فروتن و ایران یعنی فروتنان این بزرگترین است که در جهان یک ملتی به خودشون بده برای همین که ما ایرانیان واقعا فروتن هستیم و این فروتنی در جاهای دیگه نجاد آریا سراغ نمیشه و ما افتخار به فروتنی و بعد لقب آزاده به خودمون دادیم یعنی آزادگی باز در اینه که ما فروتن باشیم ایران یعنی فروتنان سلام خدمت نواشید خدمت استاد جنیدی من میخواستم که در مورد وجود دیو در شاهنامه صحبت کنم چون یک عکسای دیدن به دست من رسیده انسان های با قد حدود سمت متر است مترو نیم که کنارش سلطان گیستان ایستادهن این انسانها خیلی بزرگیان می‌خواستم بپرسم که ممکنه که فیلسوف به یک دوره که انسان وحشی به تبدیل به این انسان معمولی میشه صحبت کرده باشه متشکرم قبلا در بر شما در این باره در برنامه پیشین ما صحبت کردیم و پیدا شد که دی به خصوص دیوان مازندران دوین ها هستند و بلندترین بزرگترین دوین یعنی این کوه ها دوین سفید یعنی دونده و مبارزه دماوندن با ایرانیان شب آمد که ابر شد تا به ما جهان گش چون روی زنگی سیاه زگردون بسی سنگ بارید و خشت پراکنده کشتند ایران به این یک فعالیت مجدد دوین سفید یعنی دماونده که در اونجا ایرانیان کشته میشن کم کم دوین که من به خاطر دارم هم از مطالبی که ابن اسفندیار گفته بود و هم از گفتارهایی که استاد بزرگ مازندران حبرستان آقای دکتر منوچه ستوده تقریبا پنجاه تا واژه در که همه اینها دوین یا دین یا دوین اینها همه معنی برجستگی و کو و تپه میده نه مردم همه با هم رشد کردن از صورت, صورت های اولیه در با هم فرمان یزدان بود نمیشید در یه جا به صورت دیو باشن در یه به صورت انسان بوده باشن مطمئن باشید که اینا دوینه یعنی برجستگی ها تپه به این کوه های مازندرانه. با درود بر شما شهر ابرکو که در شاهنامه هم آمده یعنی چه علی از ابرکو خب این ظاهرش خیلی ساده است که باشه ابرکو یعنی کوه بلند مونتا این نام باید به یه کوهی نزدیک اونجا اطلاق شده باشه چون من که ابرقو رو رفتم و اون سر رو زیارت کردم فعلا تو دشته ممکنه که نام از جای دیگه منتقل شده باشه درود بر استاد عزیز جنیدی گرامی هم من و هم تمام ایرانیان دوست داریم ناگفته های ایران باستان را از زبان, شیر... از زبان شیرین شما بشنویم رزوانیان از احواز درود بر احواز شاد باشید با امیدی از دان. قاجانز استاد سوال کنم ببینم آیا اون زمان زابلستان جز ایران نبوده چون چند جا رستن میگه به ایران نبینید مرا میرم به زابلستان یا میگه از ایران رفت به زابلستان چطوری این جریان شده با تشکر از شما شاد باشید و درود به سابلستان، کابلستان از نخستین ژلوگوهایی است که در تاریخ از اونا یاد میشه اما اینکه اینجا رستم که براشوف خاص از ایران بره بیرون به خاطر اینکه گفت من زم... شما رو زمین پر ککشمه رو من خواهم رفت من از ایران خواهم رفت البته در افزود های بعضی جاها اومد مثلا همین بیت که زابول به ایران از ایران به تور برای تو پیمودم این راه دور نمیشه زابول به ایران اومد چون زابل خودش ایران هست اینا جزو افسوده هست نه مطمئن باشید که زابولستان از ایران بوده و هست همطور که کابلستان با سلام خدمت شما مجری محترم و استاد بزرگوار که بنده در موبایلم ساعت برنامه شما را یادآور گذاشتم که گوش بدهم قدری از شهر همدان بگویید. چرا اسم شهر هم چرا این اسم را بر شهر همدان گذاشتند حالا من خود درستش میکنم همدان یعنی چه حکمتانه بوده و تانه پاسفندش همون تانه یعنی جایگاه ببینید باز درباره پیچپندش ما باز اندکی دقت بکنیم حکمتانه کم کم تبدیل شد به اکباتان و تبدیل شد به همدان و گمان دارن که همدان یعنی همه دو البته که همه دو هستند همه همه جهانیان دانا هستند یارم همه دانی و خودم هیچ ندانی. یارم چه کند هیچ ندان با همدانی دانی. این, این پرداشت های تازه است همون حکمت ها نبوده. سلام قدیمی تنی. شهر ایران کجاست؟ نخستین شهری که به عنوان پایتخت ازش یاد میشه کوس هست در تبرستان. ز آمول گذر سوی تمیشه کرد میشه کرد. نشستندران نامور کرد. کجا که از جهان کوسخانی همین جز این نیز جا نامی ندانی همی یا کوسخانی ورا جز این نیز نامینه این پایتخت کوس بوده که من جایگاهش رو پیدا کردم در بعد از آمول به طرف نوره با... که دو روستا ازش باقی مونده کوس محله و کوس زر که این دو روستا از اون شهر باستانی مونده اما شهرهای باستانی تر از اون بسیار داریم نمیشه داوری کرد الان کهنترین شهری که جایی که پیدا شده در کرماشانه در کنجدری کرماشانه که در 1400 سوات سفال داره از یزدان پاک با درود بر در هدایتی عزیز و با درود بر در استاد فرزان فریدین جونیدی از کنا خدمت من در مورد درفش کاویانی و درفش تورانیان که ما ایرانیان از جانه سیاه همیشه دور بودیم چون درفش تولانیان سیاه بوده ولی به ظاهر آهنگران هم آهنگران امروزی و در باستان اون چرمی که به روی سینه می مشکی یا همون سیاه بوده آیا درفش کاویان یا همون درفش کاوه مشکی بوده یا چیز دیگری بوده با درود بر شما باشوکی هستم از اسلام شرشاد باشید دیگران رو هم شاد کنید شاهد باشید آقای باشوکی مطمئنا اون چرمی که آهنگران پیش پای خودشو میبندن در آغاز قرمز رنگ بوده این حالا بعدها اگر با جرقه و و کار بسیار رنگش تغییر بده کنه اون تقصیر خود چرم نیست اما درفش در کاویان همطور که در پاسخ معنی کاو گفتن موضوع خیلی خیلی شگفتیه که به زودی در کتاب داستان ایران آقای خوندون رو جناب آقای دکتر درباره چگونه سخن گفتن و آموزش زبان فارسی بیشتر بفرمایید سایت شاهنامه را برای ما بفرمایید یه چیزی اومده ما متوجه نشو برای بهتر سخن گفتن شاهنامه بخونید آین سخنوری رو از استاد فرزانه جهان و ایران فردوسی توسی بیاموزید این خیلی خیلی روشنایی خوبی است. برنام مودب خدمت شما امید پارسی هستم از تهران با تشکر از استاد جنیدی میخواستم مشخصاً ایشون نظرشون رو در خصوص دیوان در شاهنامه بزن. آیا دیوی که میتونه به تهمورس خط یاد بده و جایی که در هنر معماری به شکل هندسی بنا ایجاد میکنه، این دیو با بقیه دیوها که در جایهای دیگه شاهنامه کار رفته، یکیان یا دیوها معانی مختلفی در قسمت‌های گوناگون شاهنامه دارند. باصفاض بدرود بر شما دیو در نوشتن از واژه دیپ گرفته شده دیپ یعنی نوشتن که واژه دبیر و دیوان و دفتر همین ازون گرفته شده و از ایران رفته به اروپا و متاسفانه اروپا پرستان فکر می‌گن که واژه یونانی بوده نه این اساس دیپه یعنی نوشتن دیو در دیوار دای هست یعنی دیوار که هنوزم در کوکیلو بور احمد و در مشاور دیوار رو دای میگن در واژه دیوار میبینیم به صورت دی درومده این اشارات به ساختن دیوار و نوشتن اما اون دیوان دیگی که به شما اس کردن همه های مازندران هستن که بالاخره دیدیم در یک از های جورهای دیدیم که چطور این سنگ ها رو تراشیدن راه درست کردن و به این وسیله ایرانیان پیروز شدن بر یعنی بر یعنی بر سنگ کوهای سنگی خار و, و اینها راه گشودن اما دیو به این صورت غیر معمولی در شاهنامه دیگه ما نداریم مگر اینکه در داستان اخوان دیو که اون را هم در یکی از جلسات شهر دادم یعنی اندیشه بعد، اخوان یعنی اکومن یعنی اندیشه بعد. این آخرین تلفنم پخش کنیم از اصطاق بخواستم بپرسین اگر امکانش هست در مورد زبان قدیم ایران اگر کتابی هست برای محارفی کنند و دیکم که آیه کتاب هست که این کتاب که ایران شناسی قدیم رو مثلا برای ما توضیح میدن اونا هم جد کنند اسمشون بگید. مچرکرم خدا درود بر شما کتاب نامی پهلوانی رو من نوشتم خداموز خط و زبان پهلوی عشقانی ساسانیه دو زندگی و موجهات آریاییان از کهانترین اوقات من اینا رو نوشتم که نظر شما رو تهمین بکنی اینا رو بنیاد نشور بخواید براتون میفرستند. درود بر شما که مایه آرامش و شادی ما میشوید جمعی از بازنشستگان بهبهان شهر شما را شهر ما را فراموش نکنید جشت. درود بر بهبهان امیدوارم هیچ و خودتون بازنشسته احساس نکنید همواره سرزنده باشید همواره دلزون جوان باشه حرکت کنید به جوانان یاد بدید که شما جوانی را چطور سپری کردید همه پند همه حکمت همه آموزش مانده نباشید در نباشید. از شما. شاد باشید. تحیل کننده برنامه خانوم نیافر صدا برداران آقای حسینی و خانم چگینی هماهنگی خانم خانوم مرجان آبدین ارتباطات آقایان کاظمی و حسینی سردبی و مجدی برنامه همیز رزو هدایتی را سپاسگزارم از شما شب خوش روزو خوش